نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر. مبهد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکست، بر این است بنیاد توحید و That's